بسم الله الرحمن الرحیم دوره مبانی فقه نظام کلاس استاد کلاس اول استاد سید محمد طلبه توایی. اگه سامعون گوش نشه باشی. باشه. باشه. این زمانی و این ی سال دفعه استرات یه سال رو تدریس میتونی بگی نه است استرات یه سالش هر دوباره یه سال رو بده. چه خبر من گذاشتم هفته این آه من نه یه ساعت است بر نامه میشود آره آره درست هفته این تغییرش داریم؟ نه یه رو یرو استرات. چه خبر تا نه پس ان شروع کردم آره خدا تو سعی میکنم الان کمتر استفاده من داشته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل مللك من حجت ابن الحسن كنت ورثه كنت بش بي اگر رنگ کنم پس تو ای فرازو میگم بفونید ما نیستی نیستنا جلسات دیگر از اینجوری شروع میکنی باشه اشکال نداره فکر کنم ما همین جلسه تون میخونید البته تا به کی اشکال نداره بسم الله الرحمن الرحیم ولتکون منکم امه تن يدعون الى الخير و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک المفلحون سلام عليكم خوب نمشد. خب از عذاب خدمت دوستان، خیلی صبحات خواب زنم، من در درس شرکت کنم. دغدغه رو واقعا خیلی تووازه ندارم. عرضش ارزشمنده که اینجا شرکت می‌کنن. باعثه که خدمت ها هستیم تحت اموال خنذام فرهنگی، حالا اموال کلی این بحث رو در سه قسمت در نظر گرفتیم، ولی هر چقدر فرصت شد. یه بحث مفونشناسیه، یه بحث روش شناسیه، سنجی این بسید اینه که از یا فرهنگی داریم نه نداریم از عدل ذرفیت شو داریم یا یعنی نه که چند نمونه از قواعد و فرو بحث میکنیم براتون قبل از برود یه بحث بکنیم میکنیم توی بحث فرهنگ شما خود فقه بحث, بحث کنیم فقه یعنی چی؟ یعنی حکم، حکم یعنی ارزام الان اصلا ترین بدقی جهان ماسایی اینه که اصلا فرهنگ یا ارزام پذیر هست یا یعنی. نه چرا چون نیاز فرهنگ نیاز به خلاقیت داره نیاز به آزادی داره فرهنگ مثلا یه امر اجتماعیه شما دی پذیرش اجتماعی داشته باشه یه امر داغ است شما مثلا طرف میره بازی رایانه انجام میده میتونی مجبورش کنی مجبورش کنی میتونی بگی حرامه میره انجام میده اون مراحل تصور و تصدیق و شوق و مراحل ارادش که شک بگی انجام میده شما چطور میخایید فقه براش در نظر ما سیاست فرهنگی حتی تو خیلی کشورها یعنی غالب کشور مدرن مثلا همینه که میگه آقا مداخله نباید بکنه دولت چون فلنگه اگه مداخله بکنه فرهنگ زایل بشه. یعنی اصل این بحث و حالات همینه مثلا الان تو کشور خودمونم تجربه زیاد شده مثلا سر قلیان کشیدن میگن فرهنگیه حالا به دلایل پزشکی می‌خواستان دورش رو بگیرن اما نتونستن دیگه تازه مثلا من لج کشیدم مدام بیشتر رو تا کشیدم یعنی این موججی ما با فرهنگ مشخص بشه با این موازله دو نوع مواجهیم همتونیم داشته باشیم یه مواجهه ما اینه که همون مواجهه حالا لیبرالیستی مشور که دنیا هست که مشهور هست یا قلش خصیش اینه که کلا مداخله نکنیم موالی موسا بیدین خود ایسا بیدین خود دیگه ما فقط حمایت میکنیم خود کنسرت برگزار کنیم ما زمین رو میدیم مثلا با رو میدیم کمکش میکنیم ما هیچ دخالت توف اما یه برس دیگه اینه که ما میخوانم تو پاسوب با همین سوال اساساً فقه, فقه فرهنگی رو، یعنی عنوان عامتر میگه میخوام در نظر بگیریم که میخوانم بگیم میشود اما اگه خواهد تو تو اصول ما یه بحث مناسبات حکم موضوعه اینجا ما یه موضوع ما فرهنگه بله موضوع با تو عباب فقی تغییر کرده مناسب با این موضوع بله میتوانیم حکم داشته باشیم چگونه این ف ابطه تعبیر کردن فقه فرهنگی نافخین نظام فرهنگی هم نکته داره. نمی‌کنید توی تحلیلی که ما کردیم دیدیم این عمدت بحثی که میشه میگن آقا فقه نظام فرهنگی حالا فقه نظام فرهنگی کی حالا بدونه اون حکمراتی که تو وضع هستا تقسیم میشه. دیم این تقسیم ناقصه. نمی‌کنید ما یه فقه فرهنگی داریم. یعنی چی؟ حالا مطرحش نرس سر بحثو بگم این فقه فرهنگی داریم. ی فقه نظام فرهنگی داریم، ی فکر نظام مودیت فرهنگی داریم، نباید ماست تأکید بشه. یعنی چی؟ یعنی که یه بار فکر خوب میایم، فکر فرهنگی رو توی سطح نظام میبینیم، یه بار تو سطح روابط خود میبینیم. یعنی یه فکر فرهنگ خود میشه، یه فکر فرهنگ نظام میشه. این سیر کلی ما باهیس. بدونی میخوایم بگم، حالا بحث نشود. حالا وارد اصل بحث خوام میشه. میخوایم اولین بحث مقدم فرهنگی. این خیلی نکته مهمه بعض وقتا تو حوزه ما خیلی سطحی از این کاراش می‌گیم واقعا فرنگی چیزی که با هر نظریه فرهنگی یه طور فرهنگی معنا شده ما تا نتونیم یه نظریه فرهنگی داشته باشیم مثلا فقه فرهنگی نداریم یعنی خیلی ما خیلی مسائل تو رو بعضی وقت واقعا سهل می‌بینیم یعنی تو حوزه علوم اجتماعی تو حوزه مطالعات فرهنگی اینا فرهنگ رو حالا بخوام بحث فلسفی, فلسفی داره ولی در کل می‌خوام عرض می. نکنید آداب گفتن عادات گفتن حالا خیلی اجمالی بگیم خیلی سادش باید دونه مبانیسی فرسفیش سنت ها اشاره شده هنر نماد افکار عادات اینها به عنوان فرهنگ ما تعریف مختلف ذکر شده اما حالا با اون کار نداریم اونها فقط بفتیم که ذهنیت وارد بحث میشه اما بحث اصلی ما اینه که فرهنگ رو سرانت خودمون چیزوی رو میخوایم معنا کنیم یا ما توی صانت خود منحرج مخیم انسان رو مفهمیم می میان توان ساخت نفس محنا میکنیم یه خاطرتون باشه تو ما انسان شناسی ما یه بحثی که داریم توان مراتب فعله این که تصور میکنیم تصدیق میکنیم بعد شوق است تأکید شوق است و حالا به موانی علامه, علامه تبایی که اعتبار وجود بعد انجام فعل دیگه ای انسان فردیه حالا انسانی در جمعی چطور میشه که یک میشه فرهنگ دیگه فرهنگ یعنی انسان جمعی که میشه یعنی انسان فرهنگی یعنی شما فرهنگ رو مرادفه با نفس فرهنگی معنا بکنید بعد وقت به یه تلقیه وقالی از فرهنگ میرسید که این من موافق اتا قاید قرآن هم هست یعنی چی؟ یعنی فرهنگ رو بر مبنای مراتب اراده انسان تقسیم میکنه میشه باید بینش انسان بنشید که داریک جامعه شکل می‌گیرن، بنش اوممی، نگرشی که نگرش فرهنگی، حالا نگرش که در فرهنگ داریم، بعض وقتا دا با اقوایدی که می‌توان کلام می‌گیم با خارج میشه نکنی نگرش فرهنگی اعتقادی مثلا با خداوند نگ... منم میگم نگرش فرهنگی. نکنی یه وقت نمی‌گن این سریع عقیده باشه، نکنی عقیده قرآنی نگرش. ما وسط حساب من میاد مثلا تو فقه فرهنگی بحث میکنم یه آقا اعتقاد میگی به عدالت خدا من همون بحث کلامی و توحیدی میگن این تو فقه فرهنگی میگن آقا فقه عقیده نه واقعا اینطور نیست نگ... وقتی میگیم فرهنگی یعنی که که پیوست اجتماعی داره مثلا شما ام... مثلا اینشان هم حضور زن ندارم ولی هر نگاهی که جامعه شکی فکر و پیوست اجتماعی داشته باشه عمومی داشته باشه میگن این گالیش من اون نگرشی که فلسفی باشه وجدانی باشه برایهای دین باشه. کنید، ما این خاصیم که باز وقت می کنیم بعد خوب تعریف فرهنگ هم تعریف دین رو میاریم. اصول عقاید هم همون واسه دقیقا میگیم تعریف فرهنگ فرهنگ واقعا غیر از دینه. حالا در مورد دین پاسکادن توضیح میدید. نسبت فرق فرهنگی و علم دینی رو باید بحث کنیم. مثلا بگین یه بودش نگرشه. خب شما راه تصور است از ثروت است که میایم تو این نفس فرهنگی بحثه توسعه این دین بودش میشه نگرش نگرش فرهنگی یعنی همون مراتب اراده بعد مراتب اراده چی بود شوق بود اون شوق میاد به معنای اهلیت فرهنگی چطور معنا میشه میشه, میشه. میشه. گرایش فرهنگی اون گرایشی که در جامعه شکل میده مرحله دیگه چی بود گفتیم اعتبار وجوب اعتبار وجوب اینجا چه حالاتی میاد میکنه میشون ارزش‌ها و هنجارهایی که در جامعه شکل میگیره. یعنی اون مراتب را داره اینجا بیان تطبیق بدید، امتداد بدید، توصیف می‌دونم کنه. خب خود مفهوم فرهنگ شکل می‌گیره. و آخرین بحثم فعله اینجا در حوزه اجتماعی دو نوع فعل ما این, فعله. این فعله. که فعل که استران خنشه یا این فعل واکنشه. یعنی ما بر این اساس ما مؤلفه‌های فرهنگ رو توی این نفس فرهنگی پیدا میکنیم. این هر وقت اما الان داریم میگم فکر فرهنگی منظورمون این بحثه. هر چم که داریم بحث میکنیم دیگه غیر از این ها که تو تعریف های فرهنگ و طولوم اجتماعی گفته شده اینا هم مظاهر فرهنگه که به اجتماعی تو تعریف فرهنگ عکس شده یعنی ما افتخاست فرهنگ تو تعریف اونها نقد کنیم دو نقد کنیم می اونها مظاهر فرهنگو گفتن ما عناصر و مؤلفه هاشو میگیم که تکوین فرهنگ تکون فرهنگ ببین این رو با آیت قران یه یعنی بفهمید بفهمی کنید نگاه کنید خب با این از که گفتیم فرهنگ بر پایه اراده شکل میگیره خب حالا این اراده در قرآ کردیم چطور برث شده. میکنین در قرانه کردیم ما سه نوع فرهنگ داریم. یه نوع فرهنگ فرهنگ که ایمانیه یه نوع فرهنگ فرنگ کفره خوب این که بازه یه نوع فرنگند داریم کهون مثلشون می داریمیم فرهنگ اوفی یعنی سوش مشخص نیست این نه سوی ایمانن داره و سوی کفته شما وارد این روستا ها میشه با شهر میشید یه صنت قوممی قبلی خاص خودشون دارن. نگاهیم تو هر جان بری یه هر اغلایی داره اینجا دیگه سویه شده کنه مهمه این سویه جهدگیری مهمه یه وقت جهدگیریش ایمانیه یه ای وقت جهدگیریش کفر، این وقت هم نه، جهدگیری خمسا داره هایی در این چیه؟ بیز دوگینه لیناس خوب و شهبات من النسای و بنین و قناتیر و مقامترات بناس زهب و فضت و خیل مستدامت و انعام و حرس سال افتدای آیا رو نیا کنیم زوگن الناس خبو این نکته این اینجاست تزیین شده این خبه اولای که این گرایش جاد شده و این تزین شده یعنی اینکه که این شوخه آکت شده و این هم این لناسه اولای که علا پلا باش استقراقه شمول داره زوگن ناس. این نکنیم فرق عموم مردم شما می‌دون می‌کنید باقوله با قرائان دوفام همینا میگه که اینجا ذلات بر ایمان و کفر داره. این چه عرفی داریم؟ داره میگه ایمان و کار نداره. این عموم مردم همینه. اما سوی عمل مؤمنانه بر وفای تقواس، بر وفای ایمان دیگه اینا رو دیگه خب طلب اینو لازم اعتراضی جان نیست. از این به واسه طارق باشیم میگویند تو بس نفس گفتیم شما دوباره تو همون بحث انسان شناسی یا نفس بدین مد نفس انسان دوباره دو حالت دو ساحت داره یه ساحت فطری داره یه ساحت طبیعی داره ما اینو واقعا باشد فرهنگ کارده ساحت فطری ما چه بود اون یافته های الهی ما اون بزده این که ثابتت رو مبود روح ما تجرد وجود مجرد ما بود طبیعی ما چه بود مبود به قذب و شهبات و امراه غالی ما بود. بود فطری ما هم شد محکمات انسان ثابتات انسان بوده میشه خب الان اینجا تو فرهنگ با باش کار داریم ما این قضیه نگاه کنید فرهنگ بخش ثابت دارید بخش متغیر داره ما تو بخش فرهنگی باید نببینیم یعنی موقع با تو بخش ثابت فرهنگ ما اقمازی نداریم احکام ثابت شریعت باید حفظ باشیم آن تو بخش طبیعیه مثلا این صورت فرهنگی یه جای شکل گرفته قابل تغییره یعنی مستند به این چندم میم فرق فرنگی میخوام بگیم موضوع فرنگی اون هم داریم نفس فرنگی میگیم نفس فرنگی هم همچالتی داره واسه فقه تاثیر داره این تعریفی که ما داریم می این وجود طبیعی ما تو تغییرات فرهنگی یعنی فقه فقهیه تغییرات فرنگی که الان انجام میشه تو اصل تغییرات فرهنگی با همه قضیه کار داریم که چه نوع موظعی می خوام بگیریم اگه تغییر فرنگیون به نسبت به اون ثابت انجام میشه خوبه طول سوئز اما مثلا اون متغیر داره انجام میشه نه و تو این مقضیه اصلا مهمه فتوه نمیده ما داریم بررسی نظری میکنیم این از بحث فرهنگ که به مسابقه نفس فرهنگی در نظر گرفته میشه محکم دوما فقه فرهنگیست و اینکه چرا ما گفتیم که مقسمی برای بحثمون داریم که گفتیم یک قسمش فقه نظام فرهنگی میشه نسبت فقه و فقه با فرهنگ داریم محکم نکنیم نسبت وصفیه چیزی که ما فقه فرهنگی میگیم اسکل یعنی اینه فرهنگی شدن دار فقه فرهنگی شدن فرهنگی شدن توی اصطلاحات انسانی بیشتر نگاهی بر ساختارایی نگاهی که شما مثلا نگاه اورفی شدن این هاست ولی میخواهم بگیم که این رو که تاکید کنن که جای بودن فرهنگی شدن سنش اونجا دیگه میره فرهنگی شدن در اینجا منظور ما اینه که موضوعات ما احکام ما ادله ما هر سه احکام که میگم یعنی با طرص فقیم اینجا کار داریم مستقیم نمیخواهیم بارد هر ستا شون نهای های فرهنگی دارن شون بر اساس این دلالات های فرهنگی که در هر فرهنگ داره مثلاً میکنین ما تو فهمون هداب التحاره خودمون رو احکام محبوب به چی داریم تخلیی میکنی داریم میکنین تو احکام تخلیی بحث بدنه میکنین بدن یکی از موضوعات محم که دلالات های فرنگی زیادی داره اما تو جامعشانسی فرنگی مفصل تر همین بدن داره بعضی تو جامعشنسی بدن خب بدن رو تو فقیق فرنگی میکنم تایش بحث کنیم یکی از بحثایی که داریم پنج بحث امنا ما تو فقیق بدن تاقد داریم یکی دامل تطیهیب و جمل و آورت و که در بدن هست که حقیق مصور سمارت فقیقی داره یکیش میشه، سماراتش میشه بحثه، سمارات عورت میشه، احکام نظر که روابط اجتماعی رو داره در فرهنگ عمومی تنظیم میکنه اینا فقه دیگه اینا فقیل فرهنگی دیگه نمونه است، میکنید موضوعی مثل بدن و احکامی که مثلا در تغارت داره، نه حکومت دلالات های فرهنگی داره یعنی, شما در فرهنگ... یعنی روابط اجتماعی رو دارید فرهنگ داره تنظیم میکنه حالا این فقه فرنگی ما میشه اندازه نظام به نظامات اجتماعی باشه میشه فقه نظام میشه اندازه به فقر روابط میا... روابط فرنگی خورد باشه میشه فقه فرهنگ خورد که به امکانه ندیم اما ای از این فقه فرنگی تو مفهوم دیگه تولد میشه یعنی فقه نظام و فقه نظام مدیت فرهنگی که این دو تا خیلی جدی مشکل تو اکران دید فقه نظام فرهنگی که وقتی گفته میشه نگاه کنین. ما یه موقع فقه, فقه فرنگی مون صرف امر فرهنگی محض سار یه موقع این امر فرهنگی رو به مسابقه یک امر سیاسی داریمی بینیم که فرهنگی شده است. نکنین این خیلی فهم میکنم. یک امر فرهنگی محص رو داریم بینیم بعض وقتا اینها رو با هم درکی خلص میکن. میکنیم. همه شما خود بگیم فقه نظام فرهنگی. واقعا اینطور نیست. نیست. نکنین فقه محص. چون اینا اون دست فرهنگ زن فرنگی با یه سر موضوعات دا فرنگی داره نفس اینا نمیدونم که آقازی بتون تحویل بدن یا نه ما صرفا سه موضوعات در زن فرنگی مون داریم در اصل موضوع شناسی که حالا به لوازم تحول اونو اجتماعیام چشم شد یه فرنگی عمومی داریم یه خورده فر داریم یه واسه تکثر فرنگی داریم یعنی یه موقع از وحدت فرنگی جامع در جامعه صحبت می‌کنیم یه موقع از تکثر فرنگی در جامعه صحبت می‌کنیم اما صرف فضاای فرنگی عمومی پنج مسئله برای برای تو اومدم مسئله کردنش بحث فرهنگی رو داریم روابط اجتماعی رو داریم ارتباطات اجتماعی رو داریم فراقت گذینی و سابق زندگی رو داریم بحث اقتصاد فرهنگی نمی مسئله فقه نظام فرهنگی فقه فرهنگی عمومی در خورد فرهنگ نیا کنید تفکیقی که از فرهنگ عمومی در خورد فرهنگی میشه هم باز اینجا با تأکید که در علوم اجتماعی اصلا تفاوت بین متفاوتی و مبانی فلسفی خاصی داره که اصلا ما این رو قبول نداریم. ما که ما تقسیم کردیم، خود فرهنگ رو تقسیم کردیم به فرهنگ موضوعی و فرهنگ محلی، یعنی محلی. ما مبنونمون این بود که گفتیم که فرهنگ موضوعی رو عرصه‌ای است که از فرهنگی که تمامیت جامعه رو در بر می‌گیره، کم‌من به اما خود فرهنگ نه اینطور نیست. نیست، فرهنگ. گاهی ما فرهنگ موضوعی است فرنگ خانواده فرنگی سیاسی فرنگ اقتصادی اینا تمامیت جامعه رو دربر میگیرن چون وقتی شما در خانواده ایرانی صحبت میکنین فرنگ خانواده رو در ایران داری صحبت میکنه این فرنگ ما فرنگ عمومی باز نمیدونیم چرا با اینکه تمامیت جامعه رو کم من در بر داره اما میگیم نه کیفان در بر نداره روابط شما روابط خصوصی است روابط خاصی از و روابط که در تعریف میشه محدود است یه بحثی هم از پرده فرهنگی بحثه فرنگ که فرنگ شهریه فرنگ روستایی هست احسای زیادی کنم از خورد فرهنگ ولی اون چیزی که حالا مثل فرهنگ دانشتو بیان هم هست ولی خب اون چیزی که نظام من میشه سرش بحث کرد به نظام من نه نبنه موشخص باشه که اینجا تعریف ما از فرهنگ همه و خورد فرهنگ غیر از من است که در رومی اشلام های اما نمون تاراضی فرهنگی بحث فقه نظام فرهنگی که مفهوم شناسیش مشخص شد ما سر چی مخوایم بحث کنم؟ صورت بحث کلنا بگیم بحث تکسر فرهنگی داریم که اینکه بحث خیلی مهم مینه ما الان جهان فرهنگی ما کلنا شده فضای تکسر به وفور این وزیر وجود دارد خود همین ارتباط فرهنگی که میان جوامه هست خود خود این تکسر ایجاد که در روابط میان فرهنگی شکل گرفته الان قبل ما کوئی اضیام فقط بود ولی خب دیو گسترش مودرن تنبیشان هم شد. نمی‌دونید این تکثر فرهنگی یه موقع در میان یک جامعه شما دارید بحث می‌کنید. داری یعنی جامعه داری بحث می‌کنید. یه وقت در اون یک جامعه داری بحث می‌کنید. این صورتش باز فر می‌کنه. یعنی بعضیا الان یک مسئله مهمی که واقعاً توی بررسی اینه این این با تکثر فرهنگی این مسئله مهمی نمی‌دونید. بحث به واسه اینکه سنت دینداری در ایران یکی از مسائل مهم همینه که اصلا ما میگیم که آیا مردم دیندار هستن یا نیستن یک فاسق اساسی اینه که اصلا شما چرا با یک معیار سیاست نگاه میکنیم بس تکثر فرهنگی فرهنگ ها متفاوت شده، برداشت‌ها دین متفاوت شده. اینا با فاز تکثر فرهنگی شما لازم نیست که فرهنگ فقط در نظر بگیری فرهنگ واحد که اون رو بخوای صرفا نگاه کنی. بله وزای نمیشیم از اولی بس از اولی بس از اولی بس از اولی شروع کنم بله از این صورت بندی کلی دوباره بگم به اینم هم نیازی نیست نیاز کنید نیاز کنید و ما گفتیم گفتیم یه مقصدی داریم، مقصد ما مافخ فرهنگیه. که این دو قسم داره، که نظام فرهنگی، فقه نظام موجودیت فرهنگی. گفتیم اینجا چی داریم؟ این تظیفه فکرشه یه مفهومی داریم فرهنگه. فرهنگ گفتیم فرهنگ اینجا بر مبنای سنت خودمون توضیحی که ما ازش میدیم گفتیم بر مبنای همون انسان فردی رو در مساوی توسعه میدیم میشه انسان جمعی، میشه انسان فرهنگی. مراتب اراده رو که از انسان, انسان فرده چه بود تصور بود، تصدیق، شغل، تأکید شغل، اعتبال وجوب انجام فرم اینها رو تو تعریف فرهنگ، تحریف کلیش مطرح کردیم تعریف خود فرهنگ، انسان، این فرهنگ رو به مصابه یک نفس فرهنگی دیدیم ببینیم اون تصور و تصدیق اینجا میشه نگرش فرهنگی اون شوق ما اینجا گرایش ها رو میسازه اعتبار وجودی که اونجا میگیم اینجا ارزش ها و ان ها رو میسازه فعلی که اونجا گفتیم اینجا کنش و واکنش رو میسازه یعنی بر مساوی همون صنات خودمون یک نفس فرهنگی در نظر یهفتیم و گفتیم این هم بر مبوع قرآ هم طابقت داره. این فرهنگ شو. گفتیم این فرهنگ هم اینو که دیگه هم گفتم نفس فرهنگی گفتیم گفتیم نفس انسانی چی داره؟ یه ساحت فطری داره یه ساحت طبیعی داره. یاخته همون نمود کنیم میکنم ارتقا بدیم دیگه دو بعدی فکری انسان چی داره؟ یه بعد ثابتی داره که این لایه تغییره اینا ثابتات انسان به های جوادی محکمات انسانه بعد طبیعی انسان چیه؟ مثلا قضا و شهوت اون چیزی که با بواسطه خاکی و بوقالی، ببعد مادی انسانه اون بعد چی میشه؟ مثلا صباهات انسان بر همین اساس من گفتیم که فرهنگ هم یه بخش ثابت داره یه بخش متغیر داره برای اساس توی فرهنگی ما ما سمره داره این تعریفی که از موضوع شناسی که اینجا از از فرهنگ داریم میکنیم یعنی یه توی تغییرات فرهنگی که خواستیم بررسی فکر کنیم تو بخش ثابتات ما میگیم تغییر امکان نداره مثلا خواست جهانی شدن جهانی شدن فرهنگی یک از مسائل فرهنگیه دیگر. جهانی شدن دموکراسی فرهنگی توسعه فرهنگی خب اینا تغییرات فرهنگی حاصل میکنن یا تو بخش ثابت ما نگاه میکنیم میگیم تو بخش ثابت نه دست میزنیم اگه تو بخش ت... متغیر فرهنگ بود، تو بخش طبیعی،, طبیعی، طبیعی ما بود، ما میگیم اشکالی نداره. یعنی تو بحث سیاست فرنگی ما که میشه، بحث دموکراسی و بحث هانی شدن که یک بحث خیلی مهمه، اونجا این موضوع شناسی ما اونجا سمره داره. بحثی بعدی که گفتیم، گفتیم بحث چه خودش به محمولی چه بحثی داره؟ گفتیم مقصمیه. در سطح فقه نظام یه بار می‌بینیم، و بار فکر خرد من مبونید که داریم. در سطح فقه فورتیم شفقه روابط فرهنگی روابط اجتماعی خورد میگیم یعنی جامعه هست به اون کار ندیم در سطح کلان میشه فقه نظام فقه نظام فرهنگی داریم فقه نظام مدیریت فرهنگی داریم. در فقه نظام فرهنگی از امر فرهنگی محض صحبت می این امر فرهنگی در سطح نظام اجتماعی چه نوع حکمی داره یعنی چه نوع ساختاری داره مثلا همین موقع میشم بحث یه بحثش فرهنگ عمومیه، موتور شناسیه که بقول بحثایی که در اولو فرهنگ شده. یه بحثش فرهنگ عمومیه، یه بحث خرده فرهنگیه، یه بحث تکثر فرهنگیه. مبناش هم این بوده که ما این تقسیم بندی ملاکش اینه که میگه فرهنگ، داربختت فرهنگی داریم در میکنه می‌کنیم. همه جامعه یه فرهنگ داره. همه فرهنگ شیعه مثلاً داره. یه موقعن تکثر فرهنگی بحث می‌کنیم، در روابط فرهنگیه. مثلاً توی جامعه مسلمان یکی کافر حالا واسه دینداریشون بحث می‌کنم اونجا شاخسه زیادی داره روابط میان فرنگی میشه نه کسره فرنگی تا که سره فرنگی یه موقع درمون یک جامعه بحث میشه یه وقت نه میان جامعه بحث میشه شما فرنگی مثلا حالا یه موقع مثلا تو جامعه اروپایی می‌خواد بحث کنه جامعه ایرانی مثلا میشه روابط میان فرنگی بین جوامع یه موقع نه جامعه خودمون می‌خوای بحث کنی مثلا می‌خواد بگه تهرانی ما مثلا چطوریه این مفهوم تا کشور فرنگی. به لازم تقسیم‌دهی که دوبار این ساختار داره فرنگ عمومی ما، به پنج بخش روش تعریف شده. یعنی یک بس پس هویت فرنگی، یک بخش پس روابط اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، فرقه‌گذاری‌های گزینی و نگهی اتصال فرنگی. یه تأکیدم بود که نمونه تو هوادار در بین روابط اجتماعی، ارتباطات اجتماعی خارجی، ارتباطات اجتماعی تو وضعیتی منظورمون چیه؟ نکنیم تو روابط اجتماعی مازه. ما اجتماعی صحبت میکنیم جامعه پذیری صحبت میکنیم از گروه‌های اجتماعی صحبت میکنیم از فرهنگ پذیری صحبت می‌کنیم، اینا بحث میکنیم. اما تو ارتباطات اجتماعی نه. از انتقال پیام صحبت می‌کنیم. حالا یک بحث میشه رسانه. میشه رسانه میشه همین دست ارتباطات اجتماعی. این بحثی که شما داشت گفتین، ساب‌قسمت یکی از مسائل مثل مد. مثل همین مثلا مثل همین بدن که مثلا حالا یک از مسائلش مثلا همین جراحی زیبایی و این‌ها هست مثلا شما واصفه فرهنگ چمبوی فرنگی داره بحث خرد فرنگ رو گفتیم که منظور ما از خورد فرنگ در قیاسه با فرنگ عمومی منظورمون این بود که در تعریفی که خودمون گفتیم بودیم فرنگ عمومی عرصی عمومی از فرهنگ است که تمامیت جامعه رو کم و کیفیان در بر داره اما خرد فرهنگ نه نطوری نیست. یه موقع فقط کاملاً تمامیت جامعه رو در بر داره. مثل فرهنگ عمومی گفتم، داماد خانواده ایرانی وقتی صحبت می‌کنیم، کل جامعه ایران مانندمونه. پس فرهنگ مثلا موضوعی که ما گفتیم یعنی اینکه فرهنگی که تمامیت جامعه رو کاملاً در بر داره، اما کیفی نه. چرا؟ چون رابطه‌ها رابطه خصوصیه. بحث ورده یکی گفته‌ایم فرهنگ محلی بود، گفتیم فرهنگ محلی کاملاً و کیفی محدوده. شما تا تر... یه روستا مثلا خاص صحبت میکنیم این شیخ مثلا نمیدونه که حج میزدند به قم چه خاصی میسن فضای فضا سر فرنگی گفتیم که این سر فرنگی یا همون میان جوامه یا بین جامعه است خب دو نوع میکن. یا میان دید. یا حاکمیتی داریم میگیم چون میگن وقتی فضا نظام وقتی میگیم. یه فضای حکومت داریم یه فضای مردم داریم مردم رو تو این فضای سیاسی تعریف میکنن برای این اساس نظام مزج که نظام موضوعی که مانجه داریم شامل تعامل فرنگی میان دولت با سایر دولت ها با سایر جوامه و تعامل میان فرنگی میان مردم باز با سایر جوامه و مردم درون جامعه این صورت بندی کلیه بس بازه تا اینجاگه چ مشکلی هست بگیریم خب تا اینجا بحث فقه نظام فرهنگی بود. می‌دونید فقه نظام فرهنگی، قسمش فقه نظام مدیریت فرهنگیه. حالا این یعنی چی؟ می‌دونیم ما یه موقعی از فقه نظام فرهنگی، بمصالح امر فرهنگی گفتیم بحث می‌کنیم. اما تو فقه نظام مدیریت فرهنگی، امر فرهنگی رو میام خودش دیگه نگاه نمی‌کنه. می‌دونیم از یک امر سیاسی داریم صحبت می‌کنیم اینجا که ناظر به یک بُعد فرهنگی است. این امر سیاسی که تو کیس فرهنگی شده داره بحث میشه. که متاسقانه اینو معامل ملحق میکنه بحث برس اولی بد خود خلق میشه به طبعشن برس فقیق فرنگ عملا از ازموز میشه و فقط فقیق سیاسی میمونه عملا این فقیق سیاسی فرنگی میمونه حتیش این, این تفکیکو رو اگه نکنیم واقعا از فکر فرنگ چیزی نمیمونه نکنیم منظور ما از فقیق نظام مجدد فرنگ قبطیم که امر سیاسی فرنگی شده یعنی مداخلاتی که منظور ما ها. نه خود امر فرنگ مداخلاتی که چه از ناحیه حکومت، چه از ناحیه مردم مردم هم که میگیم توی بکرالا بحثی که ما داریم دو بخش داره گروه های اجتماعی یکی هم بسید سازمان های مردم نهاد که حالا مبانین داره که الان تعریف اسلامیش میشه تا سازمان نقابت یا علاقت این مداخلاتی که این دو بخش در امر فرنگی بکنن. موضوع افرخ و مدیریت فرهنگ است. از این منظر ما یک بار ساختار خود این مدیریت رو میخواییم ببینیم چون یا کنیم مدیریت فرهنگ رو داریم خود مدیریت هم موضوع ما شده اینجا پس مدیریتی که یعنی جا فرخ مدیریت نمیخواییم مدیریت موقعیت به فرهنگ رو داریم میگیم یک بار از فکر سازبانی فرنگ صبت می کنیمیم مییم ساختار سازمانیش رو میگیریم مدیریت مرا انسانی رو بحث سازمانیشو بس سازبانی رو بحث میکنیم مقای اعضای وازارطالات توزیی می, می که توضیح بینیم معنیشون. یهباری از این بحث می کنیمیم یه ما از پکپی فرنگی داریمیم صبت می کنیم.عنی نوکنید اما شما نکنید ف وراننی فرنگی بخشی شده از فکر فرنگی اما الان بحث فکر نظام فرنگی ما عمدتا همین فراننی فرنگی رو نشون میگیره. وقتی میگن نظام منظورشون همینه. اما بسید که ما میگم، اخست از موضوع ما، اکلان ما هست. این یه بخش بخصی و بین حکومت فرنگی و نظام فرنگی به مساواه یک نظام اجتماعی باید فرق کاری میشون یه باری حکمرانی باید یه مقدار چون نظام برس میکنیم نموده ساختار این موقعی میخواییم برس کنیم ساختار این فرنگی چیه که این بسید دوگه من دست ما رو تشکل میده یه از مسئولیت های فرنگی دولت گفت که شش مسئولیت فرنگی کلان احسا کردیم از ادله یه بحث سیاست گذاری فرنگیه برنامه رزی که برنامه رزی فرنگی سه بخش رزی راهبردی بردی و برنامریزی مالی که میشه ادامه بوجریزی فرنگی بحثشه این همه شفر فرنگیه به همین برای مدت اجتماعیش، چرا مدت اجتماعی رو ما اضافه کردیم، ولی اینکه اینجا شما مدت نظامی راست می‌کنی، یعنی از امر فرهنگی داریم صحبت می‌کنیم. اگه یادتون باشه اول و چه گفتیم گفتیم که فرهنگ که آیا فرق حذیر هست یا نه؟ تو اول بحث می‌کنیم تر کردیم. گفتیم آیا فرهنگ فرق حذیر هست یا نه؟ آیا فرهنگ قابل التزام هست یا نه؟ اونجا بحث کردیم گفتیم که چی؟ گفتیم مناسبات موضوع مزور اقتزام می‌کنند که نوع هم که ما و امل قدرتی که ما می‌خویم تو حوزه فرهنگی داشته باشیم متفاوته. مثلا، مودیته اجتماعی رو ما اینجا بحث می‌کنیم. اگه پیوسته اجتماعی نداشته باشیم، مودیته فرهنگی واسن پروکرانی فرهنگی نداریم. می‌یا‌کنید، انگار اشتباهات که ما هم ما خیلی وقت مسائل فرهنگی را امنیتی نگاه کردیم. دائم گفتیم که مثلاً از بعضی جهات هم درست بوده، گفتیم بالاخره تهاجم فرهنگی درست بوده. اما بعضی وقت‌ها از باز کلان دیدیم، اجتماعی و پیوسته اجتماعی رو نگاه نکردیم. مثلا گفتیم این مثلا گفتیم که یه سری مرفعچ بی هم فول میگیرن از آمریکا میان اینجا خوب گشته ارشاد ببینیم جمع می‌کنه بعد یاد رفت که این آدمی که خودش اینجا مباش با هستیم این که دیگه از آمریکا نیومده این که یه آدم عادیه اینا شما باید با, با مدریت اجتماعی فوق العاده حکونی سرش اعمال بکنید عقیاشو بخونید نگرششو بخونید عوض کنید نمی‌خواید این تا اینجا دیگه احسه دیگه ما داریم موزه های عثمانی. ما یه فرهنگ داریم، میگن منابع فرهنگی داریم. اینا با هم ما تفکیک بشه. ما بین اینها هم بعضا هم خلص میکنیم. اینا بگین این بحث که ما تفکیک کردیم، ما بین بحث فقه رسانه و فقه مدیریت رسانه تفکیک کردیم اینجا. فقه رسانه گفتیم رسانه به لغت ارتباطات اجتماعیش تو فقه فرنگی جا میمونه. تو فقه فرنگی عمومی جا میگیره. اما مدیریت رسانه که ادامش هم میشه فناوری اطلاعات، اینترنت، بازی های رسانه رسانه‌های اجتماعی های جمعی این بحث سان کردنش میشه حکمرانیش اینا مربوط به حوزه حکوانی فرهنگ در حوزه حکوانی فرهنگی نکنید ما از منابع فرهنگ صحبت میکنیم نه از خود فرهنگ ما خود فرهنگ رو تو ساختار حکونی جفت نگش تعیین میکنیم تو فقه نظام فرهنگی خودشو ساختارشو تعیین میکنیم همه چیش مشخص میشه اما اون منابع فرهنگی که فرهنگ رو داره می سازه ما با عوامل فرهنگ ساز کار داریم تو حوزه حکمرانی چرا با عوامل کار داریم چون حکمرانیمون اجتماعی است مثلا از پیشگیرانه صحبت میکنیم که کی سیاست‌های فرهنگی اسلامی تو واقعا همین سیاست‌های پیشگیرانه است که حالا نمی‌کنم توضیح بدم چماس سیاست فرهنگی رو احسا کنید این ساختار کلیه بس حالا نمی‌گم این یه مفهوم شناسی بود. مبنای اصلی بحثمون اینه یک آیه اول بحث خوندمین می‌کنید این آیه رو خوب توجه کنید این مبنای اصلی بحث ما از اقسام تمام در میاد اسم الله الرحمن الرحیم و تتقو منکم امه یدعونه ال خیر و یامرون بالمعروف و ینهون علی المنکر شش تا کلمه ما اینجا داریم های کلیدی اینا تفکیک فقه نظام فرنگیس فقه نظام مدیریت فرنگیس هم اینجا در میاد اینا خونید و خب مسئولیت بست جانیز مسئولیت اجتماعی است. یعنی ام مسئولیت اجتماعیم اطلاق داره شامانه حکومت و میشه تا اینجا درست. تکه نزام ثابت. که چی؟ وظیفتون چی؟ یادونه ایال خیر. دعوات به خیر. دعوت یه موضوع. یا امورنا به معروف. ام داریم یه معروف داریم. یعنی هاونه از معون کاری. یه نه داریم معون کار داریم. خب چه شد؟ تا کار بدنجام. سر سر نم. تو فرanging مونده. خیر معروف معون سه نه مداخله داریم دعوت امر نه این یکی خیلی مهمه یعنی داری آیه هم امر فرهنگی تو صحبت شده درش ساختارش مشخص شده یا خیر است یا معروف است یا منکر است حالا باید توضیح میدیم این رو یا دعوت است یعنی مداخله شما یا دعوت هست. یا امر به معروف یا نهی از منکر ما فقه امر به معروف و از منکرمون خیلی خوبه ولی فقه دعوتمون ضعیفه خود دعا واقعا باید خوب کار کنه. خیلی وقتا به این امر معروف و, دع... و دعوت خلل شده. که الان بحثو خدمتتون ارائه میدم اینا دو جلسه مطالعه کنیم. بحث دعوت خیلی شرایط متعددی داره تو قران کریم. بحثش مفصل شده. بحث سری امر در قران کریم مفصل بحث فقهی احساس شده. احساسو این که واقعا دعوت برای اینکه توضیح بدیم که اینها چه طرقیام داره نه میگم که میخونم. أولا رفاية على سهلية موتبرية على إخراف مبني موتبرية سكونات أمام عليه السلام قال أمي المؤمنين عليه السلام كأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله <تصفيق> أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة در روایت دیگر نقصد شده که ادنال انکار انطلقی اهل معاصی به وجود مطهر ره روایت تو به عباب الامر و نحی و سایل یعنی کنیم در شرایط امر المعروف نحی از منکر هم نحوشده تو این روایت اول معاصی که اگه کمتر انکار اهل معاصی اهل معاصی که میشه با آسی باز فرق میکنه یعنی اهل معاصی کارش مزیده یعنی خود بخوادم امریک کلام اینجا میشه پرتشکل نه نو سیرا شون بر مسئلیت اینجا بحث در وجوه مخفره اکفره ور بس یعنی اینکه صورت در هم کشیده باشه این کمترین چیزیه که شما مثلا انجام بدیه باید تو نحیت ممکن اینه که اکفره اکفره ور باشه بشه فکر این رو بازه در روایت مقابل روایت دوم نمیکنین روایت دوم ما صحیحی امام ابن حنزه امام صادق علیه السلام که لا تحملوا علی اشیعتنا ورفقوا بهم فان الناس لا يحتملون متحملون نمیگن جواب نمیدونید به شیعهیانلال این رفق در اهل سنت هم داریم عامه و نازل شده ولی این روابط میگه شیعهیان شما میگی که با شیعهیان ما فشار نیارید. باشون مدارا کنید رفق نمیگن این دو نکته کلمه رو کنار هم رفق افقرار و نمیگن خیلی مهمه از توی ما میخوایم مقصد بکشیم روابط هم همش هم تو چرا شرایف از یاق کرده باید فرق میکنه. وای میگه یه مردم تحملی که شما دارن و ندارن زاتشون مثل شما نیست. تو امر مربوط نیست میگه وشون فشار نیست. استاد بساید میگه وای وای باید نمیتونیم مستحباتیم. این خلاصه سالم نکن برای ما میتونیم مستحباته. بنویسیم مستحباتم میخوایم فرز کنیم که ما میگیم نیست ماو بسیار داریم. ما میگیم واسه امر نهی شما باید فهم بزنیم. وای باید آیه قرآن چی میگه المؤمنون و المؤمنات بعضی ازشون اولیاء و بعض یامورن به المعروف و یعنون آن مانگی. شما میخوای امر کنی میخوای نه کنی یا نشکار میخوای بکنی یا مطمئن. تا سر نکاهی میگی بلایت حق التصرفه. شما لحظه داری امر میکنی اینو از شما میخواد اطاعت کنه. به چه موجبی از شما میخواد اطاعت کنه؟ یعنی شما بلایات پیدا میکنه بطلب. تو نبلایت طولی بلایت بلاده اراده اینجا پیدا میکنه میمونید خیلی مهم یعنی مسئولیت اجتماعی شما میشه باید شما حق تصرف پیدا میکنید میتونید طرف مقابل رو امر کنید اجبار کنی به انجام واجب ت... منیش کنی از طرفی که حرام خوب این ولایت ما قدیمیه اگرش بخواد عکس کنیم متو عمده مستحب نمیذاریم امر میکنید یعنی چی امر مستحب اصلا امر استعبادی معنی نمیده میمونید امر یعنی حق تصرف شما مثلا میگی مستحب میگی تصرف بکنی مستحب ولایت داشته باشی نمیشه که پس امر معروف و نحی از می کرد من این مبنو به نظرم نمی گیم که امر معروف و نحی از می کرد دلازه فقیر امر واجب و نحی از حرام داره مستهب مبنه اش ملاکن فرق میکنه این تنه او حالا پس خیلی ما هم بگیم امر معروف, خب معروف و مستحب داریم مبنه هم همینه معمولاً میگن چون معروف, و معروف و اطلاق داره واجب و مستهب پس امره و مستهب می ما می بگیم نه محروف مستدر رو محروف فرست اطلاق داره نکته ما رو محروف مانکر نیست نکته ما رو امرو نهیه امرو نهی اطلاقو نداره قدیموزیدن رو باید ارخص کنی بنابراین ملاکم شما اینجا بحث متفاوت میشه اینجاست که مبنای دعوت مطرح میشه نمیکنه توی سری انبیا شما نبیده قرآن کریم حضرت مستدر رو نبیان با علی السلام اول دعوت شروع میکنه اول میاد مثلا رو دعوت میکنه امرش میکنه اینکه تو مسلمون مصمون که لا اکرامات در همینه یعنی شما از دعوت باید شروع کنی. اما بعد که وارد فلسطین شد با جامعه ی شکل داد خودش رو شکل داد نه آیاتش تو قران زیاد دیگه که خودش رو مجبور میکرد الزامشون میکرد حتی اون موقعی که به کوه رفت و برگشت وقتی مردم سامری مردم بت پرست شدن مادر ها جناب هارون مواخذه کرد گفت چرا باشون برخورد نکردی نمیگن اونجا فرق میکنه فضا خیلی فهم یعنی ترطوب داره شما شرایط امر معروف کردن یا منکر یعنی چی این امر معروف رو نهی از منکر یه سری جاه فاقد شرایطه خب حالا اونجا که فاقد شرایط بود چیکار کنیم یه منکری هست مقصده موجوده یعنی چون شرایطش نیست درفه مفصده نخواهد بکنین آیا شارد به دفعه مقصده مثلا چجوریه مثلا دفع نکنی نکنیم مشکل نداره چون شرایطش نیست نه اگه اینجوری باشه که اصلا اصل رسالات زیر سوال میده انبیام همیتونستم بگنیم خب اینا که مکلف میسرن اینا که علم ندارن خب ما هم بگی نمیخواد کنیم دیگه اما میگیم نه اینجا همون مبنای اقامی مبنو مهمه مبنای اصلی ما اقامی معروف و دفع شده ولی اقامه شامل دعوت میشه شامل امره است. دفع هم شامل دعوت هم میشه، شامل نهی از منکر هم میشه. یعنی مبنا رو ببینیم، مبنا خیلی مهمه. مبنای ما اقامه معروف و دفع منکر. و ملاکه جلب مصالح و دفع مفاسد مهمه برای ما خب حالا در امر مستحب هم میتونیم بگیم شامل میشه، دعوت به خیلی می‌گویند. در شما توی مرادف فقهی یا حالا بحث دعوت بحثی که شده بحث ارشاد جاهله. میشه توی کتاب الطهاره البته بحثونه. تا اینجا ما نیا کنیم. الان تو که در جهاد هم یه بحثی ما داریم در دا دعوت که اما شما ها جهاد می‌خواید بخواهی ببنیم قبلش مثلا دعوت داشته باشید. اینجا ما باز همین دلالتش همینه بگیم. بخواهی چون جهاد باید تعلیم باشه دیگه. یه وقت وقت تموم نیست بگیم. اینجا مبنای بحث ما شد که چرا ما تقسیم بندیم. بگوانیم فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهن اینجا سوالی هست بگی اگه که خیلی واضح و صراحتا بگید بله فرهنگ که توضیحی گفتم فرهنگ گفتم نگاه کنید دو گفتم که مثلا نگاه کنید شما فرهنگ رو یه مظاهری داره یه اناسری داره مظاهر فرهنگ چیه؟ آداب، آداد، سنت ها نواد هایی که سنن شکل میگیره اینه مظاهر فرهنگ تو تعریف علوم اجتماعی این مظاهر و رو، اناسر رو تعریف ذکر کردم. خب اشتباه ما گفتیم فرهنگ رو می‌خوای تعریف کنی نکنیم خود فرهنگ یه چیزی امن اعتباریه فرهنگ خودش که چیزی نیست که فرهنگ رو شما به مسابقه یک انسان فرهنگی وقت فهم کنید وقت فرهنگ معنا میشه بودیم انسان فرهنگی یعنی چی؟ گفتیم الان نفس فرهنگی بودیم انسان فرهنگ، انسان در محله فرهنگ، چه انسان جمعیه؟ موازهی تا اینجا، انسان جمعیه، جامع اجتماعیه اینا شما بیا، با هم انسان فردی ملغایسه کنید یه انسان، یه فرد انسان، چه ویش دیگاهی داره؟ مرتبه اراده شو نگاه کنید. مرتبه اراده... اراده چی بود؟ ما اول یه محصول تصور میکنی. اول فکر میکنی، تصور میکنی، اول یه محصول بعد بهش تصدیق میکنی. بعد که تصدیق کردی، شوق بهش ایجاد میشه. این مراتبی که تو فرسبه گفته شده دیگه. شوق بهش ایجاد میشه. بعد که شوق ایجاد شد این شوق تأکید میشه. درسته؟ واضحه؟ بعد میگه خیلی علایم اضافه میکنم یه میگه اعتبار وجوب همون هست میگه نفس نو این شوق رو به اینجا می که من باید این کار رو بکنم وقتی این بایده اومد کار انجام میشه که مثلا ما فقط انگیزه رو گفتیم اونجا خیلی میخوام عامیانه بگم اینم بس انگیزه شی دیگه یعنی شما باید تصوری بس داشته باشی بشه یه انگیزه ایجاد بشه تا یه کاری بکنی گفتیم همین مؤلفه های تصور تاثیر شوق، تأکید شوق، اعتبار وجوب، همین فعل انجام فعل یعنی از خیف تا سر بشه همینو بیاریم، سر انسان فرهنگ یعنی که در سطح فرهنگ داره زندگی دا میکنه. میکنن وقتی میگیم فرهنگ سر انسان در بگیر میکنن سر انسان در بگیر میکنن فرهنگ عمره غیر انسان که نیستیه همون مراتبی که برای اراده برای انسان فرد انسان قابل شدیم برای انسان فرنگی هم قابل تا اینجا واضحه حالا گفتیم که این مراتب اراده رو میمیم تعمیم میدیم، امتداد میدیم، ادامش میدیم بحث ما چی میشه اینجا؟ بودیم اون نه. نگرش های فرهنگی که ما مییافته میدیم اولین عنصره که در تعریف فرهنگ ما داریم یعنی اون تصوورات اصیل که داری فرهنگ شما تو این که داری در سطح فرهنگی معنا کردن چی میشه؟ میشه نگرش فرنگی من اونجا بازه نیست بگم اگه بازه نیست بگم جوابیشونه بدم تموم بشه بس بگم این اون شوق و رو م... که گفتم اینکه جای نیست چونه که نگاه تو اینجا ابحام آموزم آلا فردی آلا فردی گفتم آلا فردی شو این فردی رو میکنی انسان جمعی اصلا یعنی چی یعنی ما نگاه کنیم مالا جمعی این دیگه خب ما الان یه فرنگی مثلا داریم ما مثلا ای تک تک ما وقتی کنار هم باشیم چی میشیم میشیم یه جامعه چی یه فرهنگی حالا فرهنگ تا به جامعه فهم می‌کنه هر دو ما تک یه ماها یه سری وقتی میخوام یه کاری انجام بدیم یه مراتبی داریم برای اراده خودمون می‌کنه فرنگ رو داریم بر پایه اراده تعریف میکنم مثلا مثلا انسان با اراده‌اشه که انسان میشه دیگه حالا یه دیگه بود ما خواستیم مثلا بحث اون باصور خوبه زیاد که راتو واسه نفس شدن، که الا مثل مراتب نفس و اینا اونجا نه می‌خوام، می‌خوام اصلاً پیش نمی. من می‌خوام میگم اینا هر تو واسه افراد، اینا شما کنار هم بچین. ایشون تصور تصدیق و شوق و تاکید شوق و اعتبار انجام فعل، ایشون همش همینجوری. حالا اینا کنار هم بذار. چی میشه؟ این اراده رو کنار هم بذاریم چی میشه؟ میشه که فرنگ جمعی میشه. چون به نظر است. من به این طور میشه و تقسیم کنم. حالا شاید بعضی‌ها بگن این فرنگی‌ها سنگ تعریف شما از فرنگ جامعه یکیه. ولی واقعاً این طور نیست. جامعه خیلی ابعاد بیشتری داره. ابعاد سیاسی داره، ابعاد اقتصادی داره. اون‌ها هم جامعه است. ولی واقعا این فرهنگ این یه خیلی مهم میده. شما این مراتب رو که من همین‌جا می‌ذارم، اینا هم میشه؟ گفتم عناصر که برای فرنگی‌ها این‌طوری نگرش فرنگی داریم. ارزش‌های فرنگی ما داریم. ارزش‌ها و حنجارای فرنگی داریم. کنش ها با کنش ها این تعلیت های, های فرنگیه این تعریف خوده بزه... هست؟ این تعریف ما سخ... بیجه ای نیست همون تطویقه انا فردی و انا سال جمعیه جنفرش وقتی گرایش فرنگی میگی این گرایش همون چیه اون شوق دیگه الان در تحبیل تا... تا... مونباز شده شوق فرنگیه شوق جمعیه وقتا میگیم که اعتبار وجود میکنیم میگه باید انجام شود این بایده که به وجدان شما میگی من باید این کار انجام بدهم. این ضرورته که برات خاصل میشه این تو محل فرنگی چطور رو بروز میکنن میشه اون ازشان و هنجار رو اون بایدهای فرنگی که برای شما ایجاد بشه حاضره؟ بفرنگ این از ایشون بگن صباتشون ببخشید ببخش ایشون تا سوال کرد، بگم بفهمید بفهمید بفهم حتی کنید صورت نکنید بفهمید شون بفهمید بلندتر میگیم بلندتر نکنید امر فرنگی من در نظرمون هست اما نه اون طور که تو فقه نظام فرنگی می‌بینیم. می‌گن تو فقه نظام فرنگی خود مؤلف خود فرنگی رو بررسی می‌کنه. می‌گن آقا جان هویت فرنگی چه عیزی و عناصری داره؟ مثلا یه برنامه اصل جدید می‌ذارن، آیا با هویت فرنگی مسازگار هست یا نه؟ این با سیاست کاوانا داره، با هیچ با مدیریت کاوانا نداره. ارزیابی فقهی می‌کنه. یا وا این برنامه می‌گه آقا با برنده باش با مثلا هویت فرنگی مسازگار هست یا نه. این مفراقت‌گوزینه اینکه مثلا ساعت دوازده شب باشه این با فراقت گزینی اسلامی سازگاری دارد یا ندارد این میشه فقه نظام فرهنگی اما این موقع نه شورای سیاسب گذاری ما شکس میگیره مدیریت رسانه میخواد انجام بده این میشه مدیریت فرهنگی این دیگه فقه, فقه, فرهنگ، فقه نظام فرهنگی نیست دو شما باید نظام فرهنگی که ما نداری ولی مسئله فرهنگه نگم این خیلی مهمه نگم بله امر سیاسی ف امر سیاسیه، مداخله سیاسی، اجتماعی، مداخله حکومتی، مداخله امته. مد... از این باب امر سیاسیه. اما خب این مداخله فر... مداخله نظر چه امریه؟ اگه مداخله سیاسی کلا می‌خوام این که میشه فقه نظام سیاسی، دیگه فقه فرهنگی نیست. این مداخله سیاسی اجتماعی اگه نظر که به فرهنگی باشه، مثلا مثلا شورای تصدیگذاری مثلا شکل بگیره. سیاست‌های مثلا کلی اینجا چیکار میکنیم ما؟ اینجا بخش مدیریت فرهنگی. واضحه؟ می‌گویند امر سیاسی که فرهنگی شده است، یعنی ناظر به یه امر فرهنگیه. شما اینو مثلا می‌بینید شورای 문화 فرهنگی شکل می‌دید مثلاً. شورای فزه مجازیش شکل می‌دید. اینجا مداخله سیاسیه، امر امر سیاسیه. اما ناظر به چه مثلاً؟ موردت چیه؟ هدفت چیه؟ متعلقت به گل ملموس چی؟ سر چی داری سال فرهنگ داری به از این بونیم بشه خست که بین فرهنگی فرهنگی فرهنگی مدیریتی فرهنگی تر بعد این از دویر آیه برای فرهنگی به و شد از این دهبرک شد بسیر فرهنگی ما خود متعزی نشدیم که چطور از این آیه و بخصه فقه فرهنگی من از رو یا فقه نظام فرهنگی. چون گفتم ما فرق گذاشتیم بین فقه فرنگی و فقه نظام فرهنگی. نیا کنیم گفتیم که خود توان خود شد کنیم یه یاد هم رفت بیم نیا کنیم بس اتفاقا همینه خوب باشه جواب سالهشون رو بیدم یه بس اصلی ما اتفاقا همینه که نیا کنیم ما میخوام بگیم که فقه نظام فرهنگی موظ، برای قرای فقه نظام مدیریت فرهنگی. است. این خیلی نکته مهمی، نکته خوبه اشاره کردید. ما وقتی نمی‌ریم از مدیریت فرهنگی صحبت می‌کنیم، شما اول باید اون نظام فرهنگی رو تو فقه نظام فرهنگی مشخص بکنی. یا مثلا چی معروف است؟ چی فقه نظام فرهنگی من مبنای این آیه گفتیم منظور ما این است که چه چیزی معروف است، چه چیزی منکر است، چه چیزی خیر است. این‌ها رو بعد توضیح بدید. این شفافن از اون فرنگی من, من با رسانه این آیه خب بعد حالا این معروف و منکر و خیر که شکل گرفت دعوت میشه امر میشه نه میشه یعنی شما تا معروف نداشته باشید که امر به معروف نداری تا منکر نباشه که نهی منکر نداری درسته خب همینه شما تو فقه نظام فرنگی از معروف صحبت می‌کنید از منکر صحبت می‌کنید مثالش هم دارن مثلا یوا وقتی برنامه مثلا کویت فرنگی معروف است یا منکر و سنت فرنگی ما می یا نمی من مثلا فرض اش یه بحث دیگه ما داریم مثلا خیره خیر بیشتر میان میام فرنگی و اینا بیشتر معنا پیدا میکنه چون مثلا جهل و جهل مکلف و اینها مسئله اما تو مدیریت فرنگ میخوام میگم که خب حالا این معروفی که شکل گرفته این منکر که شکل گرفته این خیری که هست شما چه باید؟ مد... چه نوع کنی؟ مشه مشه نه مداخله‌ای می‌خوای توش بکنی؟ میشه امر، میشه نه؟ میشه دعوت. پس فرق داره با هم دیگه. واضحه؟ خب، الصلوات علی و الله. دوستانی که اگه دوستان وقت دارن، نگین داری دست به دست کنین با سیر ماباست آشنا بشید با دوست. بعد راست میشه بس بس ها... okay, but...